بزرگترین نیاز انسان چیه؟ غذا، آب، سلامتی، خانواده، پول یا تحصیلات خوب. دوستان خوبم، به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدید. امروز معلم ما از کتاب پیدایش به ما نشون میده که بزرگترین نیاز ما چیه و به ما میگه که اگه نتونیم اون رو تامین کنیم چی میشه. بیاین با هم شروع کنیم. ضمن که به ما یاداوری شده که انسان تنها به نان زنده نیست. حالا از معلممون میشنویم. یکی از قسمت‌های آشنای کتاب پیدایش و یکی از بحث مباحث این کتاب رو در باب کتاب پیدایش می‌بینیم. من تصمیم گرفتم به اون بحران بگم. بحران اونطور که بود و اونطور که هست و ما در باب سوم رو میخونیم چیه؟ اون بحرانی که کتاب مقدس بهش اشاره میکنه گناهه اون بحرانی که کتاب مقدس بهش گناه میگه اون بحرانیه که همه ما هر روز بارها با اون مواجه میشیم آیا با اون به روش خدا برخورد میکنیم یا به روش خودمون تفسیر کتاب مقدس بر مبنای طبیعت بشری آنگونه که بود و آنگونه که هست میگه همه ما مانند گوسفندان سرگردان هر کدام به راه خودمون میرفتیم این طبیعت بشره. به گفته کتاب مقدس خدا ما را مخلوقات با حق انتخاب آفریده. چون ما مخلوقات با حق انتخاب هستیم میتونیم اراده خدا رو به جا بیاریم یا میتونیم به میل خود رفتار کنیم. میتونیم به روش خدا رفتار کنیم یا به روش خودمان. البته ما بر سر صفره عواقب خواهیم نشست. نویسنده مشهور رابرت لویس استیونسون گفته دیر یا زود هر کسی باید در زیافت عواقب کارهاش بنشینه. اون چیزی که کتاب مقدس به ما میگه. یک زیافت عواقب وجود داره و همه ما باید از اون بخوریم. این زیافت عواقب گناهان ماست. ما مخلوقات با حق انتخاب هستیم. ما میتونیم اون زیافت رو هر طور که میخواهیم باشه ترتیب بدیم. با به سوم کتاب پیدایش اون بحران رو شرح میده که اولین بار چگونه اتفاق افتاد. اون نبرد اراده ها رو نشون میده. اراده انسان یا اراده خدا آنگونه که بود تا ما اون نبرد را اونطور که هست درک کنیم. زمینه پیدایش اون رو در باب دو می‌بینیم. آیات هشت و نه. این شرح چیزیه که ما دربارش در باب سه خواهیم خوند. خداوند خدا باقی در عدن به طرف مشرق غرس نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت. و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را یکی از سوالاتی که مکررن پرسیده میشه اینه آدم و هوا در باغ عدن چیکار کردند اگه به باب سوم پیدایش رسیدید این سوال را بکنید اون چی میگه معنی اون چیه معنی اون برای من چیه برخلاف اونچه که شما شنیدید هیچ اشاره ای به سیب در پیدایش باب نشده نمیدونم این سناریو رو از کجا آوردیم که اونا سیب خوردن همونطور که در جلسه قبلیمون در باب های یک و دو در آفرینش مرد گفتیم دیدیم خدا اونا رو در اتحاد زناشویی قرار داد پس میدونیم که کاری که اونا در باب انجام دادن گناه جنسی نبود بسیاری از مردم فکر میکنن که آمیزش جنسی اونها میوه ممنوع بوده اگه این باب رو در زمینه خودش درک کنید، اون خنده داره. اونجا چه اتفاقی افتاد؟ اینجا باز ما نمونه ای از اصول مطالعه کتاب مقدس رو داریم که در مقدمه کتاب مقدس با شما در میون گذاشتم. اصل مطالعه کتاب مقدس که اینو میگه یک رویداد میتونه تاریخی باشه و بدون کم کردن چیزی از جنبه تاریخی اون واقعه، اون رویداد میتونه مفهوم تمثیلی هم داشته باشه. از کلمه تمثیل وحشت نکنید. پولس در غلاطیان 4، 22 تا 24 میگه ابراهیم دو پسر داشت. این یه تمثیله. حالا اون تاریخه اما در این حال تمثیل هم هست. اگه به تعریف کلمه تمثیل نگاه کنید، چیزی مثل این رو میگه. تمثیل داستانیه که در اون افراد مکانها و چیزها معانی دیگری هم دارند. معمولا تعالیم اخلاقیه. این مفهوم یک تمثیل هست. تمثیل داستانیه که در اون افراد، مکانها و چیزها به علاوه معانی تاریخی یا معانی اصلی اونها معانی دیگری هم دارن. از این نظر در پیدایش باب ما یک تمثیل داریم. اصلا شما تا حالا درختی به نام معرفت نیکوبت دیدی؟ یا تا حالا یه درخت حیات دیدید؟ تا حالا شنیدید یا تا حالا دیدید یه صدا گردش کنه؟ اینها همه سمبولهایی در پیدایش باب سه هستند اون باید زبان تمثیلی باشه پولوس رسول گفته برای یهودیان یه نشانه لازم بود و منظور او این بود که یهودیان به زبان زیبای استعاره فکر میکردن. این همون چیزیه که مکاشفه آخرین کتاب کلام خدا مصداق اونه اون زیباترین زبان تمثیلی که میتونید تصور کنید در پیدایش باب سه هم ما زبان تمثیلی رو میبینیم. این زبان استعاره یا تمثیل چیزی خیلی عمیق درباره بحران به همون شکل که بود و مخصوصا به همون شکلی که هست به ما میگه در پیدایش باب دو آیات 8 و گفته شده در این باغ که خدا آدم رو در اون قرار داد میخواست نیازهاش رو رفع کنه قصد خدا اون بود که احتیاجات آدم رو با درختان باغ رفع کنه که او رو در باغ قرار داد این درختان بر حسب چگونگی رفع نیاز آدم شرط داده شدن. مهمه به خاطر بسپارید که یک اولویتی هست که به ترتیب اومده اولا این درختان نیاز چشمان انسان رو رفع میکرد بعد رفع نیاز خوراک او بود و بعد اونا به او حیات میدادند اما یک درخت معرفت نیکو هم بود و اونا مجاز نبودند از اون درخت بخورند این چیزیه که در باب دو یاد میگیرید آیات هشت و در باب سه وقتی اونا گناه کردند یا وقتی به راه خودشان رفتن و اراده خدا رو به جا ایووردند توجه کنید که اون سفارش اولویت تا جایی که به درختان مربوطه به هم خورد عوض شد اونا چشم رو در اولویت نذاشتند و غذا دوم و حیات سوم و معرفت هرگز کاری که کردن این بود که اونا اولویت رو به غذا دادن بعد چشم بعد معرفت و دیگه به حیات دست نیافتن اونا مرگ رو گرفتن و به جاش مرگ رو دریافت کردن اون داستان سعی داره چی رو تمثیلوار به ما بگه فکر میکنم میخواد چیز بسیار زیبایی رو بگه موسا اونو این طور بیان میکنه در تصنیه هشت که ایسا هم در اناجیل نقل میکنه که انسان نه به زیست می کند، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خداوند صادر شود، انسان زنده می شود. اینجوریه که انسان زندگی میکنه. اون آیه در تصنیه هشت که در متا چهار چهار و در جاهای دیگه عهد جدید بازگو شده، از منظور کلام خدا با ما حرف میزنه زنه که انسان بتونه بفهمه چطور زندگی کنه. انسان فقط با نان تنها یا رفتن دنبال رفع نیازهاش زندگی نمیکنه یا لذت بردن از نیازهای جسمی خودش این روشی نیست که انسان میتونه زندگی کنه انسان اگر واقعا میخواد زندگی کنه باید بیسته و بگه خدایا تو در این مورد چی فکر میکنی؟ خدایا آیا کلامی برای من داری آیا مکاشفه‌ای برای من داری که چگونه باید زندگی کنم به قول موسی اگه انسان میخواد زندگی کنه اگه بیسته و بگه خدایا کلامت رو درباره زندگی به من بده و من از اون کلام پیروی خواهم کرد اون شخص زندگی خواهد کرد. اینجا در پیدایش باب دو و سه به ما چیزی گفته شده نه تنها اونطور که بوده بلکه همونطور که هست. ببینید خدا انسان رو در باغ قرار داد. یعنی خدا انسان رو در حیات قرار داد. او ما رو اینجا قرار میده. همین که انسان رو در باغ قرار میده به انسان میگه من نیازهای تو رو میدونم چون من تو رو ساختم. و هر نیازی که داری برای تو در باغ فراهم باق به قول روانشناسان ما ایستگاه بزرگ مرکزی ترن نیازها هستیم. نیازها از هر سو وارد میشن. من فوق لیسانس روانشناسی در دانشگاه می خوندم و از اوتش بر نیمدم. یکی از چیزهایی که از این دوره روانشناسی آموختم این بود که ما بیش از اون که تصورش رو بکنید نیاز داریم. همه اون نیازها در این داستان زیبا در سمبال قضا جمع شدن. خدا میدونه ما این نیازها رو داریم. و خدا همین که انسان رو در باغ قرار میده میگه من میدونم تو نیازهایی داری که با سمبول غذا نشون داده شده اگه از وحی من پیروی کنی درخت من که نیاز چشم تو رو رفت میکنه اگه اول اونو به کار بگیری و بعد به نیاز غذای خود توجه کنی حیات خواهی داشت اما اونا این کارو نکردند کاری که اونا کردن این بود که اولویت رو به نیاز غذا دادن بعد نیاز چشم و هرگز حیات نیافتند وقتی کتاب مقدس مکررن به چشم اشاره میکنه، معنیش چشم واقعی نیست. در مت تا 6:22 و 23 که بخشی از موعظه سر کوه است، عیسی گفته چشم چراغ بدن است. اگر چشم سالم باشد، تمام وجود روشن خواهد بود. اما اگر چشم فاسد باشد، تمام وجود را تاریکی فرا خواهد گرفت. منظور او چیه؟ فکر فکر نمیکنم منظور عیسی چشم واقعی بوده باشه. فکر می کنم چیزی که منظورش بود اینه که چیزها رو چطور میبینید. این یکی از مهمترین سوالات هست. چیزها رو چطور میبینید؟ ما یه سیستم ارزشیابی داریم. همه ما چیزی داریم که بهش دیدگاه میگیم. امروز ما بیشترین اهمیت رو به دیدگاه میدیم. دیدگاه شما چیه؟ دیدگاه شما از زندگی چیه؟ چیزها رو چطور میبینید؟ گفت که فرق هست بین اینکه وجود پر از روشنی باشه یا پر از تاریکی. اگه روشی که چیزها رو میبینید سالم باشه، اون وقت بدن شما میتونه پر از نور باشه. اما اگه چشمنداز شما، روشی که چیزها رو میبینید بسته باشه، اون وقت تمام زندگیتون میتونه پر از تاریکی باشه. پس وقتی خدا انسان رو در باغ گذاشت گفت، من تمام نیازات رو میدونم. باور کن بزرگترین نیازی که داری، مکاشفه ای از من هست، برای اینکه بهتر بفهمی. فرض کنیم که شما شخص جوانی هستید که به انتهای نوجوانی میرسید. شما به خوبی از این حقیقت آگاهید که خدا نیروی جنسی در درون شما نهاده. وقتی میفهمید که شما این نیروی قوی جنسی رو دارید، انتظار میره که با اون چیکار کنید. فلسفه رایج بین بسیاری از جوانان اینه که اگه سر حال باشم انجام میدم و ارزاش میکنم. میرم بیرون و ارزاش میکنم. اگه فقط برید بیرون و اون نیاز جنسی رو رفع کنید به گفته کتاب مقدس شما حیات نخواهید یافت، مرگ خواهید یافت، مرگ یعنی آخرین زیافت عواقب. اما اگه به عنوان شخصی جوان با اون نیروی جنسی نزد خدا بیایید و بگید خدایا تو این نیرو رو به من دادی، از کلامت به من نشون بده جایگاه این نیرو کجاست؟ منظور از این نیرو چیه؟ وظیفه اون چیه؟ از کلامت درباره این نیرو به من بگو و من این نیرو رو با کلام تو مطابقت خواهم داد. به گفته کتاب مقدس شما بزرگترین شادی و احساس رضایت و خورسندی و لذت ممکن از نیروی جنسی رو خواهید داشت چون دیدگاهتون با دیدگاه خدا یکی شده بزرگترین نیاز شما لذت جنسی نیست اون کلام خداست که به شما نشون میده نیروی جنسی چیه جایگاه اون در زندگی شما چیه منظور اون و وظیفه اون چیه اگه جایگاه اون تغییر کنه پیدایش سه به ما میگه. اون بحرانه و همون شکل که بود و به همون شکل که هست. اومانیسم یا انسانگرایی میگه من به مکاشفه خدا نیاز ندارم. من عقل دارم. میدونم چی برای من خوبه، میدونم چی میخوام و به مکاشفه خدا نیاز ندارم. اومانیسم نمیگه خداوند شبان من است. میگه من گوسفند نیستم، من به شبان نیاز ندارم. اما من باور دارم اون گناهه. اون بحرانی که در پیدایش باب 3 شرح داده شده وقتی آدم و هوا در عبور با یقین از بحران شکست خوردند حقیقت زیبای دیگری در پیدایش سه میبینید همان گونه که بود و همان گونه که هست در پیدایش باب سه بلا بلافاصله بعد از اینکه شکست خوردند گناه کردند یا در عبور از این بحران طبق اراده خدا شکست خوردند آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ میخرامید و آدم و زنش قیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. و خداوند خدا آدم را ندا داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آوازت در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که اوریانم گفت که تو را آگاهانید که اریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی. وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ اینجا دوباره تمثیلوار حقیقت زیبای باشکوهی رو میبینید. بعضی ها گفتند همه مذاهب جهان میتونه در این خلاصه بشه. انسان در جستجوی خدا. اما مکاشفه مسیحی ایماندار میتونه اینگونه خلاصه بشه. خدا در جستجوی انسان. تفاوت فاحشی بین این دو هست. مزمور نویس اونو نوشته به دنبال خداوند گشتم اما بعد از آن فهمیدم که او جان مرا برانگیخت، که او را بجویم چون او در جستجویم بود او کسی نبود که من یافتم در حقیقت من یافته ی تو هم ببینید این همون چیزیه که ما تصویرش رو در پیدایش سه میبینیم بلافاصله فاصله بعد از سقوط آدم درست بعد از اون که انسان گناه میکنه خدا اینگونه گونه توضیف شده که دنبال آدم میره. وقتی خدا آدم رو پیدا میکنه، از او این سوالات رو میپرسه. کجا هستی؟ کی به تو گفت؟ چیکار کردی؟ آیا از اون درختی که به تو گفتم نخوری خوردی؟ جالب نیست که خدا مکالمش رو با ما در کتاب مقدس با پرسیدن سوالاتی شروع میکنه. چرا خدا از آدم سوال میکنه؟ فکر میکنید که خدا جواب رو نمیدونست؟ او بدون اطلاع بود؟ چرا خالق از مخلوق سوال میکنه؟ واضحه که خدا از آدم این سوالات رو میپرسه. چون چیزهایی رو که می پرسید آدم نمیدونست. چیزهایی که لازم بود آدم بدونه برای اینکه آدم رو مجبور کنه اون چیزها رو بدونه باید او رو به فکر وا می داشت. برای اینکه او رو به فکر واداره از او سوالاتی پرسید. خدا میخواست او یه چیزهایی رو بدونه یه کارهایی بکنه. یه چیزهایی بشه از این رو خدا از او این سوال ها رو پرسید. شما رو تشویق میکن که تصور کنید خدا این سوالاتی رو که در باب پیداش می از شما بکنه صبح زود بیدار میشید و یک ساعت وقت خلوت با خدا دارید در وقت خلوت شما تصور کنید خدا از شما سوالاتی میپرسه و با این سوال شروع میکنه کجا هستی بعد تو دلتون به خدا جواب بدید و همینطور بذارید خدا از شما بپرسه آیا از اون چیز ممنوعه خوردی چیکار کردی و بعد بذارید خدا از شما بپرسه کی به شما گفت به کی دارید گوش میکنید به دنیا یا به من به این روش گفتگویی با خدا ترتیب بدید بعد مراقب باشید به او گوش کنید. اولین سوال خدا از انسان این بود کجا هستی؟ اون سوال سوال خیلی عمیقی بود. شاید داستان مرد جوانی رو شنیدید که به خانه ای دست برد زد. صاحب خانه داشت برمیگشت و این مرد جوان تو اتاق گیر افتاده بود. نمیدونست چیکار باید بکنه؟ پس رفت توی کمود و در روبهست صاحب خانه وارد شد و دید که خاش به هم ریخته. به فکر هاش افتاد و سری در کمد رو باز کرد دید سارق اونجا ایستاده. مرد جا خورده بود به اون جوون گفت اینجا چی کار میکنی؟ و مرد جوون گفت او بالاخره هر کسی باید یه جایی باشه دیگه منم اینجا. در این داستان بیش از جنبه فکاهی حقیقتی نهفته است. ببینید حقیقتی اینه هر کسی باید جایی باشه. وقتی خدا صحبتش رو به آدم شروع کرد از آدم اینو پرسید کجا هستی؟ او سعی میکرد به آدم کمک کنه که بفهمه جاهایی هستند که انتظار میره شما اونجا باشید ولی اونجا نیستید به این دلیل خدا اون سوال رو پرسید: کجا هستی؟ مقرر شده هر کسی جایی باشه اما شما کجا هستید؟ هرگز این اصل رو فراموش نکنید پیدایشون رو اونگونه که بوده میگه چون میخواد اون رو اونگونه که هست بفهمیم این چه چیزی رو اونطور که بود و اونطور که هست تصویر میکنه این گفتگوی با خدا رو تصویر میکنه خدا همیشه در روابط بین خدا با انسان پیشقدم بوده تا حالا صدای خدا رو شنیدید که از شما به پرسه کجا هستی امروز به این بحران هویت میگیم تا حالا چند بار شنیدید مردم میگن میدونی من فکر نمی‌کنم جایی که هستم جایی که باید باشم فکر می‌کنم خدا منو جای دیگه ای وقتی خدا از آدم پرسید کجا هستی؟ پاسخ مرد این بود خب صدای تو رو شنیدم اونقدر از تو دور نیستم که نتونم صداتو بشنوم اما وقتی صداتو شنیدم صدات منو ترسون چون میدونم اگه به صدای تو گوش بدم اوریانی من فاش خواهد شد نمیخوام اوریانی من دیده بشه پس مخفی شدم این جاییه که من هستم روانشناسانی رو میشناسم که به من میگفتن این تفسیر بسیار خوبی از طبیعت انسانه روانکاوان سعی میکنن مردم رو هدایت کنند. که با حقیقتی که باید بدونن مواجه بشن تا از مشکلاتشون آزاد بشن روانکاوان میگن چیزی که مردم نمیخوان باهاش مواجه بشن حقیقته سخته که مردم رو با حقیقتی مواجه کنید که اونا رو آزاد خواهد کرد به این دلیلی که اونا پنهان میشن ما به روشهای خیلی متفاوتی مخفی میشیم خیلی زیاد کار میکنیم زیاد به ظاهرمون میرسیم خیلی بازی میکنیم خیلی میخوابیم خیلی میخوریم همه کارها رو زیاد میکنیم زیاد مشروب میخوریم زیاد مواد مخدر مصرف میکنیم همه به این دلیل که پنهان میشیم. سعی میکنیم از خدایی پنهان بشیم که ما رو خیلی دوست داره و سعی داره ما رو وادار کنه جایی باشیم که باید باشیم. پس خدا از ما چون این سوالاتی میپرسه کجا هستی ؟ شاید همه ما بتونیم به خدا بگیم میتونم صدای تو رو بشنوم. اما اون منو می ترسونه چون میدونم اریانی منو آشکار خواهد کرد. پس مخفی میشم. این جاییه که هستم این سوال به سوال بعدی منتهی میشه دومین سوالی که خدا از آدم کرد این بود کی به تو گفت این سوال مورد علاقه منه کی به تو گفت وقتی آدم به خدا جواب داد و گفت من برهنه خدا میپرسه کی به تو گفت که برهنه ای در پیدایش باب سه آیه هفت، وقتی که از درخت ممنوعه خوردن کتاب مقدس میگه فاصله فهمیدند که برهنه خدا هنوز با اونا حرف نزده بود اما اونا می میدونستند که بهرحنن. خدا به اون نقطه در آیه هفت ه برمیگرده و این سؤال دوم رو میپرسه، برمیگرده به اون نقطه که شما فهمیدید بهنه و میپرسه کی به شما گفت که بهرحمید. من باور ندارم که خدا با این سؤال دوم منظورش اینه که آیا ما صدایی شنیده ایم؟ آیا تا حالا گفتید خدا به من گفته؟ وقتی شما میگید خدا به من گفته شاید کسی به شما بگه، من همیشه در این فکر بودم که آیا صدای خدا مردانه است یا صدای زنانه؟ آیا بلنده یا کوتاه؟ آیا صدای بم هست یا زیر؟ منظور شما دقیقا این نیست که صدایی شنیدید. احتمالا بهتره که ما صداها رو نشنویم. اما آیا امکان داره که ما اعتقاد داشته باشیم خدا به ما گفته؟ جالبه که در ابری اون سوال به صورت تحت اینه: کی تو رو آگاهانی؟ خدا واقعا نمیگه کی به تو گفت. چیزی که میگه اینه کی تو را آگاهانید آیا امکان داره شما معتقد باشید خدا شما را آگاه کرده چیزی را بدونید؟ قطعا بله. من سالها کلیسایی رو در شهرک نیروی هوایی شبانی می کردم. از این رو داستانهای زیادی از جنگ شنیدم و فقط یکی دو تا از اونها رو بهتون خواهم گفت چون اونا چیزایی رو اینجا تداعی میکنم. در مورد مأموریت دسته ای از کشتیهای جنگی در اوایل سالهای چهل شنیدم که تحت تدابیر امنیتی در محلی با هم جمع شدند اونطور که در اون دور مرسوم بود معموریت و مقصد اونها سری بود معموریت اونقدر مهرمانه بود که هیچ کس نمیدونست اون چیه دستورالعمل سربسته و مهر شده در گاو صندوق کشتی فرماندهی قرار داشت و روز سوم در دریا کاپیتان کشتی فرماندهی قرار بود اون فرمانهای مهر شده رو باز کنه و فقط اون موقع ساکنان کشتی میفهمیدند معموریتشون چیه روز دوم دریا طوفانی شد روز سوم در دریا اسکادران در سراسر دریا پراکنده شده بودند. یک کشتی کوچک کاملا تنها افتاده بود و هیچ کشتی آمریکایی ای در اون حوالی دیده نمیشد. بعد از حدود یک ساعت اونا یک رزمناو بزرگ آمریکایی رو خیلی دور از خودشون دیدن. کشتی کوچک برای رزمناو هایی فرستاد. ما کجا هستیم؟ رزمناو میخواست سربر سر کشتی کوچک بذاره. پاسخ داد از کجا اومدید؟ کشتی کوچک پاسخ داد این محرمانه است. بعد رزمناو پرسید کجا دارید میرید کشتی پاسخ داد ما نمیدونیم بعد از سکوتی طولانی از رزمناو پاسخ رسید اگه شما نمیدونید از کجا میایید و نمیدونید به کجا میرید لازم نیست بدونید کجا هستید یکی از بزرگترین مشکلاتی که در پیدایش آنگونه که بوده شهر داده شده مشکل مسیر هست. زمانهایی بوده که ما زوابطی داشتیم زوابط اخلاقی بعد وقتی از اون جوابت اخلاقی دور شدیم رفتارمون چیزی بوده که بهش رفتارهای جایگزین میگیم. همه چی بسته به اون زوابت هست. یادم وقتی بچه بودم من همیشه زوابتی داشتم. شاید هر کاری میکردم تحت تأثیر اون زوابت بوده، اما همیشه وجود داشته. به عنوان یه شبان که به جوانان مشورت میدادم، فهمیدم که بسیاری از اونها هیچ زوابت اخلاقی نداشتند و بدون زوابت اخلاقی اونها نمیدونستند از کجا اومدن و به کجا میرن. و یقینا نمیدونستان کجا هم هستن. سوال دوم کی به تو گفت داستان دیگه‌ای رو به یاد من میاره؟ این داستان مربوط به کشتی‌های انگلیسی در مانور است. مانوری بزرگ و ماهرانه، کشتی فرماندهی در این اسکادران پیغام براس راست را مخابره کرد اما یک رزمناو بزرگ پیغام را دریافت نکرد. رزمناو از خط سیر خارج شد و سخت تلاش می‌کرد و سعی می‌کرد به مسیر برگرده پیغامی از کشتی فرماندهی رسید شما چه هدفی دارید؟ فرمانده رزمناو در پاسخ بیام گفت هدف من خریدن یک مزرعه هست. او میدونست که در نیروی دریایی موفق نیست و بالاخره باید از نیروی دریایی بیرون بیاد و یه مزرعه بخره. حالا کاربرد داستان چیه؟ های من همه کاربردی دارن. کاربرد این داستان اینه. به گفته کتاب مقدس کلیسای ایسای مسیح بدن عیسی مسیح قوم خدا در عهد قدیم و کلیسا در عهد جدید همه مانند یک اسکادران بزرگ از کشتیها و رزمناوهایی هستند که در این دنیا تردد میکنن. در مرکز این اسکادران کشتی فرماندهی هست مسیح قیام کرده ایها که احت قدیم میگه میاد و کسی که عاه جدید به ما میگه آمد. این عیسی مسیح زنده است و در سیاره زمین تردد میکنه او از مردگان قیام کرده و زندگی میکنه. و چون مسیح زنده هست او مانند کشتی فرماندهی در مرکز اسکادران هست او در تمام مدت برای ما پیغام هایی کسانی که در اون اسکادران که خودشون رو متمایز می دونن، چون همیشه همه پیام ها رو دریافت کردن متمایز از دیگران نیستند. به اعتقاد من کسانی که لغزش میخورند یا در بدن مسیح مشاجره می به خاطر این نیست که همه پیام ها رو دریافت نکردند. بلکه به خاطر اینه که اونا اتفاقی بعضی پیام ها رو گرفتن اگه شما بعضی از پیام ها را از دست بدید لازم نیست یه مزرعه بخرید یعنی ایمان رو رها کنید اگه شما پیام ها را از دست بدید کار خدا باز هم به کمال و در هماهنگی پیش خواهد رفت اما شما بدون هیچ ترتیبی دور خودتان خواهید چرخید نتیجه اخلاقی داستان اینه چشمتون برکشتی فرماندهی باشه پیام‌هاتون رو از خدا بگیرید چون منظور از این سوال اول کجا هستی دقیقا اینه. انسان گم شده و انسان گم شده اگه میخواد پیدا بشه اولین چیزی که باید بدونه اینه که گم شده. خدا میخواد شخص گم شده بدونه که گم شده. به این دلیلی که از او میپرسه کجا هستی. میتونید بفهمید چطور گم شدی و این انسان رو شرح میده نه تنها آنگونه که بود بلکه آنگونه که هست. منظور از سوال دوم چیزی هست که ما به اون هدایت الهی میگیم. خدا میخواد حقیقت عظیم رو با ما در میون بذاره. خدا میخواد این انسان گم شده بدونه گم شده این اولیشه اما دومین مطلبی که خدا میخواد انسان بدونه اینه که خدا قدمهای او رو راست خواهد گردانید من با تو گفتگو خواهم کرد میتونم تو رو از چیزهای خاصی آگاه کنم اونجا جاییه که قرار بود تو باشی و اگه تو واقعا میخوای بدونی اونجا کجاست و اگه واقعا میخوای اونجا باشی من به تو خواهم گفت من تو را آگاه خواهم کرد که قرار بود کجا باشی سوال دیگه اینجا هست، آیا از میوه درخت ممنوعه خورده ای؟ اگه از تعام زیافت اواقب میخوری، اگه زندگی تو برکت نداره شاد نیستی، از خودت این سوال رو بپرس. آیا بدبختی تو به استناد این حقیقت که تو از کلام خدا اطاعت نکردی؟ از نقشه خدا مطابقت نکردی؟ یا بدبختی تو به استناد به این حقیقت که از نقشه خدا آگاه نیستی؟ یا نقشه خدا رو انکار میکنی؟ یا علیه نقشه خدا اسیان میکنی؟ منظور از نقشه خدا اینه که ما حیات داشته باشیم و به وفور حیات داشته باشیم. به این دلیل خدا با ما حرف میزنه. به این دلیل که او میگه اینجا درختانی هستند که اولویت هایی دارند. از اولویت های من پیروی کن تا حیات را بیابی. تا به درخت حیات دست پیدا کنی. آدم و هوا این اولویت ها رو مراد نکردند. پس هرگز حیات نیافتند. اونها مرگ یافتند. این شرحی از من و شماست. به این دلیلی که میخواییم به کلام خدا نزدیک بشیم و اونو مطالعه کنیم نه اینکه بتونیم محقق کتاب مقدس بشیم بلکه بتونیم خدا رو بشناسیم که بتونیم اراده خدا رو برای زندگی خودمون بدونیم و عملا در جایی قرار بگیریم که خدا میخواد باشیم. سوال چهارم چیکار کرده ای؟ انسان رو به اعتراف وامی داره. کلمه اعتراف از دو کلمه میاد که معنیش اینه گفتن و یک نواختی. به عبارت دیگه یک نواخت صحبت کردن عملا این یعنی اعتراف اعتراف یعنی موافقت با خدا اون پرسیدن این سواله خدایا درباره کاری که کرده ام چه میگویی؟ وقتی بدونید خدا درباره کاری که کرده ای چی میگه اون وقت همون چیز رو میگید که خدا میگه اون اعتراف هست خدا میخواد ما اعتراف کنیم و برای اینکه ما رو به اعتراف بکشونه این سوال رو مرتبا میپرسه. چیکار ای؟ او میدونه ما چیکار ایم. او میخواد ما بدونیم چیکار ایم و میخواد ما درد کنیم که چه کاری کرده ایم و میخواد به او هم بگیم. در پیدایش با ما گفتگوی بین خدا و انسان رو داریم چون که خدا ما رو دوست داره. وقتی تصمیمات غلط میگیریم، وقتی در عبور با یقین از بحران‌ها شکست میخوریم وقتی تصمیم می‌گیریم به راه خودمون بریم خدا ما رو دور نمیندازه. او با محبت با این سوال نزد ما میاد و میپرسه کجا هستی؟ کی به تو گفت؟ آیا از میوه ممنوعه خوردی؟ چیکار ای؟ آیا وقتی خدا سعی میکنه با شما گفتگو کنه به او گوش میدی؟ اینها سوالات خدای مهربانیه که سعی میکنه ما رو به جایی ببره که قرار بود اونجا باشیم. به گفتگوی خدا پاسخ بدید تا شما رو از جایی که هستید حرکت بده. و در مرکز اراده عالی خودش برای زندگیتون قرار بده. بله، چه تصویر زیبایی از یک خدای مهربان. وقتی آدم و هوا گناه کردن، خدا اونها رو محکوم نکرد. اون با محبت به دنبال اونها رفت و در صحبت با مخلوقاتش پیش قدم شد. خدا روشی رو که بود به ما گفت تا روشی رو که هست بفهمیم. خدای ما امروز همون خداست. مخلوقاتش رو رهانه میکنه. منو شما رو و همون سوال با محبت رو از ما میپرسه. دعای ما اینه که درس امروز به شما کمک کنه یاد بگیرین به سوالات خدا پاسخش های استبدین. باشد که خدا پدر آسمانی ما که محبت عبدیش رو نشان می دهد، به ما استقامت و دلگرمی بدهد و به شما روح اتحاد در بین خودتان به عنوان پیروان مسیح ایسا بدهد. تا اینکه با یک دل و یک زبان خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح رو جلال بدهید.